امکان داره کسی که سواد داره اسیر علم و فضل خودش بشه و همون که حافظ میگه تا علم و فضل بینی پی معرفت نشینی یک نکته بگویم خود را مبین که رسته ما جرا که که عمدتن نقالبن انسانی که به علم و دانش میرسه ممکنه خود بین میشه ممکنه حال اون چگونگی علم و دانش و فضل خودش بشه و این اونو محروم بکنه از معرفت لازم هست که انسان برای رسیدن به اون ادراکات علم و دانش خودش رو ندیده بکیری نه اینکه که بکار نوره بکار ببره ولی ایکن وقتی پای پلی عشق میاد علم و دانش به درد اونجا به درد نمیخوره علم و دانش روی پلی عشق کاربردی نداره آن نقطه خاموشی در حرف نمی گنجد. بر تاق فراموشی بگذار کتاب اول کسی بخواد بیاد توی نقطه خاموشی اول باید کتاباشو بذاره خب، اول باید کتاباشو بذاره کنار و با کتابش بیاد چیزی پیدا نمی‌کنه طبیعتاً. در همه دیر مغان نیست چومن شدایی. خرقه جایی گروه باده و دفتر جایی باده همون آگاهی و این چیزاست و میگه دفترم یه جای گروه گذاشتم گروه و خرقمم یه جا گذاشتم گرو و اومدم آگاهی بگیرم بنابراین کسی با علمش بیا جلو چیزی پیدا نمیکنه طبیعتاً چون میخواد همه چیز رو با فاکتورها و ملاکای علمی ببینه لذا چیزی نخواهد دی دست خالی میره دنبال کارش ما یه انرژی های رو تعریف میکنیم بهمون مثال انرژی نوع دوم انرژی نوع دوم انرژی که وقتی به کسی توجه میشه اون انرژی رو دریافت میکنه انرژی نوع دوم اون بحث توجهه بحث اینگه اون انرژی نوع دوم هم باید در اونها به وجود بیاد اگر به وجود نیاد غذا خوردن استراحت کردن ولی یه جوری بدنشون گرس است توی چند مرحله افرادی که تچیز میشن به حلقه ها از انرژی نوع دوم بینیاز میشن یعنی انرژی نوع دوم رو دیگه بهش نیاز ندارن تعریف و تمجید و ستایش و غیر و غیر و غیر و, غیر و غیر. به طور کلی این مسئله قطع میشه یکی از مسائل تمایل خانم ها برای بحث جابی بحث نیاز به جلب توجه که در واقع یک گرستنگی درانی هیچ راهی نداره جز اینکه قطع این انرژی نو دوم صورت بگیره نیاز به خودنمایی فرهنگ خودنمایی اینجا باید تحت تاثیر قرار بگیره وگرنه ظاهر قضیه میتونه ظاهر قضیه صورت بگیره اما خب شما میدونه ظاهر قضیه مسئله رو حل نمی کنه اگر فرد گرسنه باشه اگر اون نیاز به خودنمایی باشه با همون روپوش و با همون چیز و با همون مرغنه و با همون چادر و با هر چیزی میتونه این جلب توجه و خودنمایی صورت بگیره لذا ما بلوغی رو تعریف میکنیم بلوغ عرفانی در بلوغ عرفانی یکی از چیزای شو که داریم عدم نیاز به خودنمایی یعنی فرد بی‌نیاز خودنمایی ضد کمال یعنی یا انسان باید انرژی ذهنیشو رو صرف خودنمایی کنه یا باید بره صرف کمالش بکنه صرف مسؤال دیگه بکنه و اینها در واقع باید پاسخ بگیره اون عوامل ترموزی باید پاسخ بگیره تا فرد بتونه همه انرژی زهنی رو کنه صرف موضوع کمال بکنه و در واقع اینها داره انرژی ذهنی. اونا رو چی میکار میکنه پرد خود موضوع کلاس اینه که فرصتی ایجاد میکنه تا به فرد بفهمونه که چی میخواد بگی اونها چه جوری باید با این اتصال رفتار کنن همینه که گفتیم بحث منیت بحث غرور غره و در اینین این قضیه به طور نظری و عملی با این مسئله آشنا بشن حالا یک فیلم میتونه آگاهی مربوط به اینه که اصلا چون این دنیایی وجود داره میتونه نقش محسری بازی بکنه و در واقع این آگاهی رو برسونه که خیلی چیزها ممکنه وجود داشته باشه که ما فکرشو نکنیم خیلی چیزها انسان میتونه استفاده بکنه اگه تعصبش بذاره کنار اگر دیده یک بودیشو بذاره کنار که صرفا علم رو میخواد ببینه و به هر حال امکاناتی هست که میتونه مورد برداری قرار بده یک فیلم میتونه یک بیننده را با یک دنیای آشنام